سودابه که از سخت آمد و سیاغه شد برای مادرش بود دیگه سیاوشو زمانی دراز در آغوش گرفت و چشم و روش رو دیری یعنی مدت درازی ببوسی و از دیدار شاه زیر نمیشد بعد هم همیگفت صد ره صد ره یعنی صد محتبه. ست رهزه از نیایش کنم روز هر شب سفاست پاس یه قسمت از شب میگن هنوز شیرازی ها میگن پاستی از شب گذشته بود و اینو چیز دارن که خب پاست یه کندوم شبیه یعنی چقدر از شب میگن یه پاس گروه میگن یعنی بیشتر رایج اینه که میگن پنج پاس یعنی شب پنج قسمت میکنن اگه ده ساعت کشی میشه پنج دو ساعت حکس کدومشون یعنی یه پاس. صورت های یه هفته آنه هم اینام گفتن، سه تا هم گفتن، اختلاف هم دلیلش هم اینه که پاس یه چیز مبهمیست، چیز خیلی مثل ساعت دقیق نیستش که اینی که هر جای یه چیزی، ولی اینجای که میگستش سه پاس از شب من نیایش میکنم یعنی هنوز از شب یه مقداری باقی مونده دیگه بنابراین ظاهران به نظر میاد که مرادش این شب پسن 5 پاسه سه پاسش و من نیایش که کس رابطان تو فرزند نیست هیچ کس فرزندی مثل تو نداره همون شاه را نیست پیون نیست میگه شاه هم بین کسان و پیشاوندان و بستگانش هیچگی مثل تو نیست تعریف، تعریف زیاد زیادش به مهر چیست ببینید چقدر چقدر قردوسی مواظبه که اونجاهایی که کلام، زشت و ناپسنده، اینو پوشیده بگی برای اینکه بفهمید که تا چه حد مواظبه این کاره داستان زحاک میگه که زحاکی پدری در شما مرداست بسیار آدم خوبی بود خیلی و اهل نیایش و مقدس و پاکیزه و یه دونه پسرم داشت و این پسرم در نهایت تو ناز و نعمت پرورش داشت ابلیس میاد پیش زحاکی میگه این پیرورن برش داره از سر تو جوونی وقت سلطن هست به ته. وقت کامرانی ته این چی نیست. میگه که والا این پدر دیگه هیچ چی نمانده برای من نکنه یعنی از مهربانی دیگه هیچ چیزی رو پروگذار نکنه من چطور ازشم؟ میگه که نه تو نمیخواد کاری بکن. تو فقط به من رضایت بده قبول بکن من خودم ترتیبش میدم بعد میگه که زحاک رضایت اینجا فردوسی میگه که به مرگ پدر گشت هم داستان. زد داناش نیدستم این داستان داستان یعنی زربول مساف. یه معنی داستان زربول ز زد داناش نیدستم این داستان که فرزند بعد که بود نر شیر به قتل پدر هم نواشت بیاید. وگر در نهانی سخندیگر است هجوهنده را راز با مادر است اگه پنهانی وزیل جور دیگه است یعنی اگه این بچه هر اوزده است مراد بینه که پرزند بعد کسی که پسر باباش باشه حقیقتا اگه شیر نرم باشه نمیتونه پدرشو بکشه بنابراین کسی که پدرش میکشه، باید از مادرش پرسید که قضیه چیه <laughs> ببینید چقدر اینو میگه وگر در نهانی سقندیگره است پجوهنده را راز با است برای اینکه اگر کسی باشه بچهی باشه کسی باشه که نباید اینجور رو گفت هیچی نفهمد. خیلی خیلی تدوسی علاوه بر امتیازات دیگری یک که داره یکیش هم همین افتت کلام میشه یعنی هیچ از حالت ادب و از حالت چیز خارج به هیچ فجل نمیشه همینجا میگه سیاوش دونست که این دوستی ایزدی نیست. سیاوش بدانست که مه چیز چنان دوستی نزده ایزدی نزد یعنی نزدگی به نزدگی که خوهر کرامی زود دید که اینجا اوضاع خرابه به نزدیک خراب که نزدیک خواهر خراب میسود که آنجاگه کار ناساز بود یعنی اوضا خراب بود. در اون خوهران آخرین خاندن به کرسی گذرین منشاندن کرسی اونیست که حالا بیم سندلی و سندلی خیلی تازه است سعدیا حافظینا حتی دوره صفاقی هم سندلی نمیکن به این و این حالا چرا سندلی شده؟ من تحقیق نه کردم و کی که اومده؟ احتمالا این کلمه هم از هندوستان اومده باشه برای که ما اصلا چوب سندل هم, هم. در اصلا سندل چوب نقاتی گرم سیره هر حال اینو کرسه همینو کرسیم بود. برای خوهران آفرین خواندن به کرسی زرینجپنش آندن چو با خوهران بود زمانی دراست قرامان بیامد سوی تخت باز سوی تخت یعنی به طرف دربار تو گویی به مردم نم آمد تمید. مثل این بود که مثل آدمای دیگه نبود روانش خرد بر آمد تمید. مثل این بود که خرد نور خردمندی از این افشانده میشه بیرون میشه چیجونه؟ یه خط هم چبستان رو نگفت چبستان همه شد پر از گفته گوی که اینت سراتاق که فرهنگ تحصیمش کردن که سراتاقی که فرهنگ داشته باشه اینجا فرهنگ منی عدب و تربیت و اینا اینت برای بیان جنسه ام. یعنی بگیرون چیز میگه ببخشید میگه ناصر خسرو به راهی می گذشت مست و لایقل نشون می خارگان. دید قبرستان و مبرز مبرز زمین یعنی مستراح یعنی خلا دید قبرستان و مبرز روبرو مانگ برز گفت ای نزارگان نعمت دنیا و نعمت خارجی بین این نعمت این نعمت خاره بله این که اینت سر و تاج فرهنگ تو تو گویی به مردم نماند همی روانش خیلیت برفشان سیابوش پیش پدر شد بگفت که دیدم به فرد سرای و میگه هرم سرای تو رو رفتن دیدم همه نیکویی در جهان بهر تو گفتنه زیادان بحانه نباید یعنی ناشتری نباید بکنی محصول با حانی از گزدان یعنی ناشکری کردن یکی ناشکری نواید بکنی زی جام و فریدون و حوشنگشاف و به گنج و به شمشیر و گاه گاه یعنی تخت گاه معنی های متعدد داره یکیش تخت یکیش نوا و آهنگ هنوز در موسیقی است گاه چارگاه پنجگاه که با نوای راست با هم قاطی رو حالا میگن راست پنجگاه ها در عربی دوگاه هم هست که اصطلاح البته از فارسی آمده. ها؟ عذونی. عذونی یعنی بالاتر بیشتری از یعنی پوزون هست. یکی هم گاه پسند زمانه، پسند مکانه مثل دانشگاه نیسه ورزشگاه پسفند زمان هم هست نیسه و شانگاه ز گفتار او شاد شد چهریار بیا راست ایوان چه بهار. ارض کردم که ایوان به عنی کاخه قبلن بهارم اینجا به معنی بودخانه از من این معبد بوداییزشون این معبد خیلی خیلی آراسته بوده همچونکه کلیزه ها هم خیلی زینت و زیبر داره میکنی کافشون مثل مثل نوبه ها مثل خوردن به یا فصل به به بگیرید به دلیل اینکه گل ها و شکوف ها, ها اونم چیزو هست اونم میشه از رن این یکی سوالی بگو جونه فیردوسی که خودش معبد چیزی چیجوری یعنی نظم نیست دیده باشه، اینا توی فردوسی معخص داشته کتاب نصر داشته، اون بوده، اولا دوم اینکه فردوسی، جای سلطان محمود در قذنین بوده فردوسی احیانا اونجه ها بوده، خودش مال مشهد بوده، مال خراسون بوده ولی اونجه ها میرفته، و... یکی بودن اینا دیگه همه بعدم اونجا خیلی نزدیک بوده به جاهایی که معابد بودایی هست مینویدیم ها در بامیان که گفتم تو فتوکنگ فتو مرکز بودایی اونجا هست و تا مدت ها به خصوص پهله و سیستان دردش نبودن احتمال خودیم که بودایی بودن ولی فردوسی خودش مسلمان بوده و همین الان هم تصور خیلی مفصلی انجام نداشته. همون اندازه بوده که منم خوندم تو فرهنگا دیده اینطوریه لازم نیست خودش رفته بشه زگفتار اون شاب شد چهری های بیا راست ایوان چه خوردن به هار و بربت و نایی برساختن بربت یک چیزی شبیه تار امروز سازه به شبیه تار امروز البته تا رو میدونید که خیلی تازه به این صورت در آمده یعنی دو تا رو درویش خان نوازنده اصر دوره مزفر از این و احمد شا و اینا دو تا سیم به تار اضافه کرده یعنی به این صورت به این صورت کامل به این صورت نبوده ولی بربط یه چیزی بوده نزدیک همین تا میو و بربت و نای برساختن دل از بودنی ها بپرداختن بپرداختن یعنی خالی کردن دلشون رو از بودنی ها خالی کردن یعنی بی خیال نشستن به و که فکر کار دنیا نبود. این گو این بربت شما تیرمز ها گفتید که بط یه شیشهی بوده که شبیه یک بطه اون دخت چه سر جان بط یعنی مر بط یعنی مرغاوی شیشه های شرابی بوده اینجوری ببخشی که نقاشی من هیچ دعیبی نداره این برای اینکه به خواب زمین که نه یک ده گشتگنه او اینا شیشه های اینجوری می ساختن اینو می بعد برای که شک مرغاویه پاتش شراب بیاه که مرمر آتون بست نیامه شکرن هم دل شناونی کنید بست غیر از بربتت بست جان میو و بربت و نای بر ساختن دل از بودنی ها بفرداختن چو شب گشت گردان و شد روزتار شدن در شبستان چه نامدار شب که شد چه حرم هرم که ببینه که تصور زنان نسبت به پسرش چیه نیمیده بود که اون بار کارش در شدن در شد شدن وعنی رفتنه هنوز هم ها هنوز میگن بشو بشو یعنی برو بشتی های دارم بشو بشو من تو رو نخوام تو سیاهی من تو رو نخوام <تصفيق> مخوان. مخوان بس دیگه من که میخوام میخوام خب بستگی داره دیگه بستگی داره شدم در شبستان شهر نامدار پجوهید و پجوهید یعنی تحقیل کرد گفتم ریسرچ و اینجا بهش میگن به فارسیش میگن پجوهش و کسی که تحقیل میکنه بهش میگن پجوهش کرد تجمهی دو سوداوه را شاه گفت که این رازت از من نباید نهوف میگه که پایش میکنم بدون رودعروسی و بدون پنهانکاری هر جوری که این بچه رو دیدی بگی این راز را از من پنهان نکنی یعنی سیابوش باشه هر که دیدی درست بگی اگه ای نفسودش اینه که اگه ایوی داره حسن داره همه رو که این رازت از من نباید نهفت زد فرهنگ و رای سیاهوش بگوی فرهنگ به معنی مجموع اطلاعات و تربیت و تعلیم و همه این داست رای هم به معنی خرده فرهنگ و رای سیاهوش بگوی زد دیدار و گفتار و بالای او، دیدار این چهره گفتار از هر سدن بالا حیکلش پسندت آمد خبر نداریم چرا که خیلی پسند کرده خانمی کنیم بیش از اون اندازی که لازم بودید پسندت آمد خیرتمند هست از آواز دور عرض دیدن به هست اگر ار یعنی یا آواز دور یعنی اون که از پوستاری که سردم میشناس شورات میگه که اون که ازش میگن بهتره یا وقتی میبینی بهتره چون بعضیها هستن حافظ یه کسی رو میگه گویم خلایا که توی یوسف ثانی چون نیچ به دیدم به حقیقت به بعضی هستم که وقتی آدم میبینه فکر کنه که اینو بهتر ببینه چون دیدنش از شنیدن عرف دربارش خیلی بهتر بعضی هم که به عکس وقتی آدم میبینشون فکر میکنه که ای کاش من این آدم رو ندیده بودم برای اینکه تصور خوب داشتم و با چی شد حالا خراب شد نه آدم بی رفتی. یک مسئله عربی هست اینو من مینویسم برای اینکه در عدب فارسی بهش استناد شده حتی در شعر ایرج، میگه انتست محبل معایدی حیرون من انترا معایدی اسم آدم است اسم شخص شخصی بوده که شنیدنشو بهتر سام از دیدنش که آدم میگه اگر درباره معزیف بشنوی فهم از یعنی شنیدن این که بشنوی درباره بهتر است از اینکه او رو ببین. این معایدی تو عدب فارسیزمش اومده حتی ایرش میردا بیگه که بزرها از چه دیده می نشون راستی مردمان دیدنی هست بعد میگه نی غلط گفتم این معایدی ها دیدنی نه همون شنیدنی هست بهتر آدم نبینشون ببخشید آخرش هم یه شعر بیعدبانه داره میگه وزرها حکم زرته را دارد که شنیده شوند دیده نیم <تصفيق> <تصفيق> به هر حال معایدی اسمش را عدبیت اومده و این این مسئله معایدی مثال و سیمبول است که بهتر آدم فقط در باشون و نبینه. میگه که آواز دور است آواز اینجا منی شهرت دارم میدونید که همنام نام, نام معنی اسم. به معنی شهرت نیکو هم هست وقتی میگن پرانکه از نامه و همه صاحب نامه اسم داره. وقتی میگن صاحب نامه یعنی شهرت داره مشهوره از نام یعنی شهرت نیکو آوازه هم داره مثلا میگن که شما این ولی آوازه شما در ایران هست یعنی شهرت میگه آواز دورش، شهرت دورش تحریمش که پویسترش میکنن بهتره یا دیدنش بهتره. از آواز دور یا از دیدن به هر کدوم یکی چی گفت؟ سودابه باید اول کلامشو با دعا شروع میسن به دو گفت سودابه همتای شاه ندیده است برگاه. خورشید و ماه اینجا به تخت روست یعنی خورشید و ماه کسی رو مثل, مثل کابوس روی تخت ندیده یعنی تو شاهد بی نظیری هست چو فرزند تو کیست در جهان؟ اینو بهش میگن استفام انکاری صورتش سوالیه ولی معنیش سوالی نیست یعنی چی؟ تو فرزند تو کیستند در جهان؟ هیچ کس هیچ کس نیست فرزند تو نیست معنیش اینه جمله به صورت استفهامیه ولی معنیش استفهام نیست نفیه یعنی هیچ کس نیست مثل فرزند تو نیست تو فرزند تو کیستند در جهان؟ چرا گفت باید سخن در مهان؟ باید آشکارا بگم بلکه این چیزه بعد شاه بشه میگه بدو گفت شاه عرب مردی رسد نباید که بیند برا چشم باد نباید این جنی مباده اینجون نباید که ما به کار میبریم نباید این جنی مباده چشم بدم. همون نظر زدن که الان میگن نظر زد من اون. چشم زد اون. چشم بد به اون محنیست. وقتی او به مردی یعنی او به مردی رسیده؟ نه. نه داره میرسی. داره میرسی. به دو گفشه او به مردی رسد یعنی داره میرسه نباید مبادا که بیند براد چشم برد مبادا که چشم زخمی حاصل میشه بعدم جوون در معرض این گرفتاری ها هست یه وقت مثلا فرض مکنید که یه دختری این دیگه حتی اقل دختری که مناسب نیست، در خور نیست، حالا یا از لازه خانواده یا از تربیت یا از لازه خواد یا عزاد تحصیلات یا هر چی بعد این میشینه زیر پای این یواشا این کار میکنه جوری بچه میکش می‌کشه تا خودش مادر وقت بعد هر کاری بکنه آقا این به درتون نمیخوره. یا خانوم فرد نمیکنه آقا ممکن زیر پای بیشینه بشینه عاطش یکیه خانوم این آقا هم تو نیست به درتون نمیخوره. فردا تو سر ما هم بدبختی داریم. پایده نداره این کوچکترین یعنی نمونه چشم بدی دیگه مبادا که اینجور بشه سوداوه چی گفت گفت که سوداوه جواب داد که اگر گفته منو بپذیره و نظر او با نظر من موافق بشه به دو گفت سوداوه اگر گفته من پذیرد شود رای او جفته من یعنی نظرش و نظر من یکی بشه چیه نظرش که از تخم خیشش یکی زنده هست تخمخیش خیش این دختش اون یکی از خواهرش سودا벳 در حقیقت نظرش این بود که یه دختر خودشو که از کیکابوس هست میدونید که در اینان باستان ازدواج با محارم هم اشکال نداشت من هم در مفصل راجع به حرف زدم اینه که این چیز سوداوه نظر داشته که یکی از دخترهای خودش رو بده به سیاوش که سیاوش بشه دامادش و بعد خودش هم خوش باحالش حالش باشه بارد. سیاوش نظر اصلش این بوده این همین وضع داشته مهد اولیا مادر ناصر اینشا مهد اولیا مادر ناصر اینشا امیرکبی رو دوست داشت دختر خودشو رو یعنی عزت و دولت هنها خوهر سنین آتر می که از یک پدر یک مادر بود. مادرش هم مهد اولیا بود هم مادر نسته دخترش داده بود و امیر کبیر بعد هم مثل که توقعات و تمنیات دیگری هم داشته و امیر همچه آدم اصلا نبود این که بعد که می بینه که هیچ راه نمی این بابا کمار قصدش می بنده. و بالاخره هم محفظ میشه سودابا هم همچین اقشه کشته بوده که دفترشو بده بیشون و بعد هم با هم ترتیباتی بده که از تخم خیشش یکی زنده هد نه از نامداران برزنده هد میگه از دیگران نمیخواد دختر خودت، دختر خوب دارم من، دختر خوب دارن اینجا هست، دختر خودته از خون خودت یکی از اینا رو بزنی بشه چرا؟ چه فرزند بشد برو در جهان برای اینکه بچه ازش بمونه به دیدار او به دیدار او یعنی شکل او دیدار یعنی بیاف یعنی شکل اون بالا هم گفتید به دیدار به دیدار خود در جهان شاه مثل بیافید یعنی به دیدار او در میان برای اینکه بچه بیاد که عین خودش باشه مرا دختران هم، مانند تو میگه دختری دارم شکل تو هستن، این شکل که حسابوس. ز تخم تو پاک پیوند تو تخم خود تو هم هستن؟ خب میدیم بهش اگه اونو نخواست از تخم کی آرش و کیپشین پشین کی لقب پاترهان خود کی کافوس هم داره دیگه کی کابوز کی خسرو کی آرش یعنی پادشاه در عوستایی کبی در فارسی کی به معنی پادشاه اسم کیوان اون کیش این نیست کی سر کلمه کی جدا کیوان اصلا اسم ستار زوحل این اگرم یعنی یا گر از تخمه کیای آرش و کی پشین یعنی یا یا دختر خود رو بگیره یا از تخمه یعنی از نجاد کیای آرش و کی پشین بخواهد به شادی کنند آفرین میگه اگر دخترهای کیای آرش و کیای پشین نمیخوام کلاشون رو که دخترشون بدن بدنید به سیاه به دو گفت یعنی کاغوس به سوذاه گفت کیم خود به کام من است کام دو معنی داره یکی جهان یک کم مراد آرزو به کام عنی به میل من موافقه می که گفت که این خود به کام من است بزرگی به فرجا و نام من است این این که مایه آخرش موجب بزرگی آقابت و نام من میشه نخاجا یا شد شودن شاه همین آخرین خان و برتاج با آخری خان هو ندید چه درو راز ز بیگانه مردان ما گرفت همین گفت کاندگار جهان یکی آرزو دارند در جهان کمالتستون نام تو یادگار پشت تو آید یکی شخصیت ها شایی به دیدار چون فهمیدید تازه روی دو دل برگوشای به دیدار آمد از افتر به فردان به گفت ستار شمر که از پشت تو شهریاری بود، که اندر جهان یادگاری بود. کنون زین بزرگان یکی برگذین نگه کن پس پرده به خانه تیارش همان میترد هر تو بیا رای و بفتاق در دو گفت من شاه را بنده ام به فرمان و رایش سرف گردم هر از که او برگذینه در جهاندار بروندگان پادشاه. نباید که سودا به این بشنود هست دیگر به بوید بدین نگرود به سودا به گونه گفتار می مرا در شبستان تو کار می زگفت گفت سیاوش بخندید شاه <تصمت> ناگاه خود زاب در زیر کام گذین تو باید به دو گفت زن از اون هیچ من بیشو از انجمن که گفتار او مهربانی بابد به جان تو برد فاسبانی بابد سیاهوشت به گفتار او شاد شد نهانش از اندیشه آزاد شد به شاه جهان بست تایش گرفت نواب پیش تختش نیايت که داهانی ز سوداوی چارگر خوی بود پیچاونو خسته جګ بدونه گفتار او حبیب این بدردیل بر پنچ بود بسیار معلومه سوداوی که ورکون مامله نیست که با شبگیرو گفتم چیه شبگیر صوب خوب که هواتفاری کرد سیاهوش به شبگیر شد نزد شاه همین آفرین خان بر تا جگاه بازم دعا تو دعا پدر و پسر راز گفتن گرفت این گرفتن یه نوع بود که وقتی می اومده به معنی شروع کردن به معنی ادامه دادن راز گفتن گرفت یعنی فروع کرد به راز گفتن زبیگان مردم نهفتن گرفت سعی کرد که صحبتهایی که میکنن کسی نش خود چون دو تا باشن. پدر داره حرف میتنه اونی که میگه پدر با پسر پدر داره حرف میتنه چی میگه همه گفت با کردگار جهان یکی آرزو دارم من در نهان یا آرزوی قلبی دارم از خدا میخوام که چی؟ که ماند ز تو نام تو یادگار زی پشت تو آید یکی شهر یاد. روشن چنان که از تو من گشتم تازه روی تو دل برگش آیی به دیدار اون که همون که من از وجود تو خوشحالم و شادم که پسری به تو دارم تو هم بچه‌ای ای داشته باشه که دلت به اون بچه شارد میشه چرا؟ چون این آمد از اختر بخردان زه گفت ستارش رو مرمو که از پشت تو شهریاری بود که اندر جهان یادگاری بود یایتون باشه که وقتی که سیاوش به دنیا آمد که کابوس داد منجمان احوال او رو دیدن و با همه این زیبایی و برازندگی و آقایی و همه ی فضل کمالی که داشته دیده بودن که این اخترش آشفته است و همون بهش گفته بودن که اما از پشت این بچهی خواهد آمد که پادشاه بسیار نامور و بزرگی خواهد خب اونا رو که ستاره تو آشغته ناراحت بوده کیفاهوس ولی به روی بچه که نمیورده این است که اوناش رو نمیگه فقط میگه که تو زن میگی سا بچه بید چون میدونستم که وضع خودش خوب نیست که بچه تو بمونه برای اینکه اختر شماران گفتن که از پوشت تو شهریار بزرگی خواهدا. چون این آمد از اختر بخردان ز گفت ستاره شمار ستاره شمار یعنی ستاره شناس، یعنی اختر شناس وجهه. ز گفت ستاره رو موبدان که از پشت تو شهریاری بابد که در جهان یادگاری بود. روشنه کنون زین بزرگان یکی برگزین. نگه پس پرده کیفشین پس پرده شنی تو خونه شنی تو هرم سراش به خانه کیارش همان نیز هست تو خانه کیارش هم این آرش ما که همیز تو خونهش چیزی نیست <تصفيق> به که ی آرش همان نیز هم در ما... یعنی اونم دختر داره ببخش دوست مگه میتونست به درتون همسره دیگه نست؟ بخش دوست مخواست خواستگاری کنه که عزیزم تیگه نگاه که در هر شریعتی بیرواز بله چطور قبلا قبل از آه، شاید من نمیدونم درست و هرحال حالا ما این مقصود از این نگاه کردن این نبود که درست نگاه کنه. یعنی بگو مثلا پیغام بده هر حال تحلیل بکن چون میدونه که این دختر داره اونم دختر داره مثلا میگه هر کتومو خودت ببین خودت انتخاب کن خودت فکرش رو بکن اون دختر داره اونم داره با. نه اینا رو به معنی درست هم کلمه کلمهش نگیرین دارو کوره میگه بله پیروز فلا کسی دیدم دیدم یعنی صداش شنیدم آما هست جنگی نمیبینی که خانه که یارش همون نیز هست ده هر سو بیارای و بپساو دست پسودن یا بسودن به معنی لمس کردن، به معنی با, با دست چیزی رو تشخیص دادن. یعنی دست به مالی که دست به بالا که بینید چیزی زبر نرمی درشده ریزه گرمه سرده این کار میگن پسودن اینجا بسرمال یعنی تحقیق کنید زهرست او بیارای، بپسافده است سیاوش که رو میتونه جوابش خیلی خیرتمندان است بدو گفت من شاه را بندم به فرمان و رایش طرف کنده هر هران کس که او برگزیند رواست اینگه هرکس شاه جهاندار بر بندگان پادشاه هست من بندم شاهی هر عمری داری من قبل نباید که این بشنود نباید باز یعنی مبادر تنها حرفی که میزنه میگه قربان شما هر عمری میفرمین هر کسی این انتخاب میفرمین من در اختیار شما و بنده شما با. ولی فقط مواظب باشین که این به گوش سودابه نشنبه نباید که سودا این بشنبه نباید که سودا این بشنبه دیگرگونه گوگر یا بدین نگرود دیگه هر تحصیل میخوام بگیرین مواظب باشین که سودابه نشنبه برای اینکه که بعد یه جور دیگه یه حرف که میاره به نظر شما توجه که نکنه گرویدن یعنی معتقد شدن و اتحاد کردن به سوداوه زینگونه گفتار نیست سیاوهش میدونه چی میگه که ای کابوس هنوز نمیدونه قضیه از چه قدر سیاوهش میگه با سوداوه با این ببمنی باس. با سودابه این حرفاره نزنید به سوداوه زینگونه گفتار نیست مرا در شبستان تو کار نیست می‌ترسیده که باید بکشه سره رو اون توزن هدید یک کنیم که اون نشنره من من دیگه حرمسران نمی‌رم ولی شاه که نمی‌دونست چیه ز گفت سیاهوش بخندید چه؟ ها نه آگاه و ضاب در زیر کاه کاه رو آب بایی و گاهی اتفاق می‌افتاد که باطلاها یا گودال های خیلی عمیق بوده که روش کاه بوده اصلا معلوم این زیر آب هست کاشو میداشت بیار رو قرب میشون و همین دلیل هم آدم های حیلگر و که ظاهرشون خیلی مهربان و باطمشون بده میگن آب زیر کاه آب زیر کاه همین. بنابی که آبی که زیر کاه باشه آدم آب رو نمیبینه و چیز میشه ممکنه قرب شه میگه پادشاه از آبی که در زیر کاه بود خبر نداشت نه آگاه خود زاب در زیر کاه به همین دلیگن که اون خبر نداشت گفت که خب تو زن بگیری تو باید اختیار کنی سودا وام جز محبت و مهربانی به تو چیزی نداره که گزینه تو باید به دو گفت زن یعنی به دو گفت زن باید گزینه تو باشه. تو خودت با زن خود تو انتقاب کنی از او هیچ مندیشو از انجمن نفکر سودابه نه نفکر کسان دیگه باش. تو خودت با زن خود تو انتقاب کنی که گفتار او یعنی سیاوش سودابه مهربانی بوبر به جان تو بر پاسبانی بوبر روشنه دیگه یا باشده گفتار او شاه، از گفتار شاه. که گفتش که از او فکر سودابر نکن فکر هنجامن نکن تو خودت بد خودت این خواب کنی خوشحال فتید نهانش زندیش آزام نهان یعنی زمیرش باطنش باطنش از زندیش آزاد. به شاه جهانبر ستایش گرفت باز گرفتن به هموند یعنی شروع کرد به ستایش کردیم، به شاه جهانبر ستایش کرد. نوان پیش تختش نیایش گرفت. نوان یعنی به حالت خم شد، به حالت خضوع، به حالت فروتنی زیاد نوان پیش تختش نیایش کرد حالا اینجا فردوسی در بیت بعد خودش داره حرف میزنید میگه نهانیز سنداغه چارگر همین بود و و خستجگر چارگر یعنی گیلگر حق با. چاره تو معنی خیلی خوبی نداره یعنی معنی یک خود پیجوراتیف شده. معنی معنی تدبیر و فکر بد داره. میگه که در نهان سیاواش کسی هم که نمیگفت در دلش از سودابه ی هیلگر پیتان و خستجیگر دید. این دلتنگ اینکه می‌دونن این زن شر و بعدم که به اخره قالی چاق می‌کنه یه بازی کلکی داشت بود که دوباره نمیگه همون وقت که پادشاه موافقت کرد که تو کاری بسودا به کاری انجام ندشون خودش خود چیز کن خوشحال شد برای اینکه دلتنگ بود از اقدامات صداقه چون از اقدامات صداقه ناراحت بود وقتی که این حرفو زد یه ذره خوشحال شد اما بدانست که هم نیز گفتدار اونست باز دونست که این اصرار که قادشاه بیاد بگه تا حالا بگیر و اعلان اینا کار صداقه و بعد اگر که این مسئله ماسید یعنی قرار شد زن بگیره اون خودش بلدی که چجوری برگردونه قضیه رو که به نرف خودش تموم بگیره اولین قدم اینه که او راضی کنه و زنگی رفتن بعد اون وقت میگه نه این بعد او یه ایدونین بذار و ایراد از اون بگیره و بالاخره برستونه اونجایی که خودش مفرده به دانستان نیز گفتار اوست همین بر به پوس پوست پارتنش دریده شد یعنی خیلی خسته شده خیلی ناراحت شد. ببین Gaston شاب بود از, دیگه دیگه از سخت سخت برنما. افسری برنما. تاج. همه دختران را برای خیش کن بیا را صورت هست نشان چون این گفت با حیر داهیر بعد دا حیر برو با سیاوش بگوید که باید که رنجه کنید نمایی برای سر... سر و بالای سر بالای سلامان بیا آمد سیاوش برش بدین آن،, بدین آن نشست و سر و افترش به پیشش گوتان نوعاین به پای تو گفتید بهشت تک گاه و گاهیم تخت آمد از تخت شد پیش اوی به گوهب یا راسته روی اوی یا وخش بر تخت زندین نشد به پیشش به کشکرده تو در گوتان را به شاه نوعاین نمود که بودن چون گوهر از همون باصوتن که حرف زدین گفت دوگو بنگر ببین تختوا طرفدنده چندین به دربین کلا همه عارفیه گوتان اعتراض تراز تراز که بسرش 18000 بسرش نشان بسرش رشتشان. برای ضرورت شعر رو بخونیم بسرششون به بهتر ستاره ی بدر شاموار کسینت کس خسرو یار عزیشان بگو ای نگا کن به بالا و دیدار و دیدار یا بخش چشمت لکی بر نداشت عزیشان یک هیچ چشمن لوه نداشت همین آن به این, این بدن آن بدین آن بدین این بدن کو ما تیاری بدین شاه کردم او افسری برنهادی که کافز اینا خوالی نیست من اشتباه بشر دی جایز الخطاست نشست از بر تق اینکم نمیزنم بیمزدگی میکنم و هفای اینکشم میبینه و نتیجهش بعد از نیست نشست از بر تق یا او گذر افسری برنهاد همه دختران را برخیش هاند، بیا راست و برطفت زرین نشاند چون این گفت واهیر بد ماهروی که از ای در برو با سیاهوش بگوی که باید که رنجه کنی پایفی نمایی مرا سر به بالایی میگه که شب که شد سوداوه باز دست پر تو خودشو همه جور عیضاق زد به خودش افتریگاق رو، پودریگاق رو همه چی رو درست کرد و قلم آراسته که از خودشو و است تخت از یاقو تو زرم تاجی گذاشتتری شو دخترها رو همه رو آود دور خودشو همه رو آرایش کرد و بعد به هیر بعد گفت که بریم به سیاهش بگیم که اگه ممکنه یه قدم رنجه کنند داشت بیرند که اینجا که من قدو بالاییشون رو بدیم نمایی مرا سرق بالایی فرامان بی آمد سی برش چاره نداشت دیگه بدید نشست و سر و اپ سرش می دیگه میفهمه که اونم بالاخره خودش آماده کرده برای دیدن آقا. به پیشش بطان نواغین به پای تو گفتی بهشت است، داست را دید دخترها هم همه دخترهای زیبا همه دورو برش و که اونجورو و مثل این که این تخت و این سراغ و اصلا بهش سیاه وخش بر تخت زرین نشاست، به پیشش به کشف کرده سودا به دست از تخت خودش بلند شد مثل پیش خدمت دست بسیده کش یعنی همینجا سودا دست رو به کشف کرده یعنی دست دست بسیده, بسیده. سودا بلند شد که رو حالا با اون با اون زینت و زیورتی که کرده اون غازیان دست پسینه جلو راخودے وایساد و سیاوش نشست و بعد دخترها رو نشون بوتان را به شاه نوایی نمود که بودن چون گوهر نابسود مثل گوهری بودن که دست بهشون نرسیده همین گوهر رو بعد سوراخ این سوراخ کردن در سرنوشت اون جواهر تاثیر خیلی اساسی داشته برای اینکه مثلا یه موروالی که ده هزار تان قیمت شده، اگه درست سراخ می شود که کاملا از وسط بری که از هر طرفی می بینی ساق باشه کج نباشه ده هزار تانی شد سد تان برای اینکه باید تو دلواند و گردن برد می نباشید. اگه کجز دراخمی شد ده هزارتان شد سخت این قدره هر گوهاری هم. به همین دلیل کار اون شخصی که این کارو رو خیلی خدمت گیران قیمتی بود دوبامی که پیرایش وقت نمیکردن نبره اینکه زوری بخواد بلکه که اونا تجربه داشتن نیترسیدن دفعه فکر کرد من ده هزارتان مروباری رو نکنم جوانه که بی تجربه‌تر بود، نیا ماهد چیگه این معمولا این کار جبنام کرد بعد این گوهر و همه گوهرهای جمع لل نمی‌دارم چیزایی دیگه اینا بعد بس می‌ستاختن گردن چون نه این سوراخ کردن خیلی خیلی مهم بود بلی یه عیب هم داشت او اینه که وقتی این گوهر رو از این قبیل تصرفات روز نکرده بودن هر کاری می‌شد بکنید ولی وقتی به یه نحوی روشی کاری کردن یک کاری نمی شد کنید میگه این دختران مثل گوهر نابسود بودن یعنی گوهری کسی درش تصرفی نکرد مقصود اینه که دوشیزه بودن بوتان را به شاه نمود که بودن چون گوهر نابسود به دو گفت بنگر بدین تخت و گاه پرستنده چندین به ذرین کلاه این خدمت بزاران، این هایی که حاضرن، کنیزی تو رو بخنن این همه نگاه کن که کلای زرین سرشونه همه نارسیده بوتان تراز، تراز اسم شهر. یک مشتی شهرها بوده که بینا می‌خوزن شهرهای غوسمخی‌ست مثل این که اسمش رو ننوشتن پای تقرید تالا نه؟ بل ارد کنم علتش نه این بوده که اینجا خیلی خوشگلدش دو این شهران نه از اونجور میرفتن تاخت میکردم گلام و کنیز میابردم زانه بچه مردم هم میگرفتن و میبستن و از می اونجور و معمولای اینه در نقواه زدکوست بوده بیشتر البته اون طرف هم طرف رومس و طرف روم و طرف برگارستان و, و کمتر اونجا بیشتر این است که یه به شهرهای شهرهایی که این کنیزا ازش میامدن معروف شده در عدد فارسی به شهرهای حسین خیز این یه دشت من همه رو چین هم گرم گرم یه شهر باز هم شاید باشید این ها روش بزن شهرهای حوصلخیست مثلا سعدی میگه ندامم از چه گلستان نگار و یک ماهی یعنی هر یک ندامم از چه گلستان نگاه و یک ماهی که خط کشیده بر اوصاف میگوام چه گل یا میگه محقق همان بیندن در ابل که در ماهرویان چین و چگل این, این اسم تمام این شهرها دونه دونه سروش اسپانه میگه اید آمد و ماه رمضان گشت حساری برخیز مرا بادده ای ترک حساری تمام این شهرها آمد از جام تراز چیه؟ اون اون اون اون, اون نه این اسم جاز اونم هست ربط نه هم نده آه. اینا اسم شهرهای حسین تیزه ایکشم تراز فرقی میگه یاد بادان شب کن شمسه خوبان تراز به طرف داشت مرا تا به گهه بای نماس. من اون هر به بوجر در و میمونس ما باز کرده در شاوی و در حجر فراز گفت صحبت بر من بابر اون بستی اهد گفت بون سلب من با لب او گفتی راز من چون مظلومان از, از سلسله نوشربان هم در آخویی، تزار سلسله زلطه در آخویی قشنگه، آه؟ <تصح> برد باتن کجاست؟ همون، همون نواهی مغالستان، سوا... چیزی، قسمت جنوبی، چی؟ به اینجا، میگم، مجوم میوردن، اصیل میوردن بگو کسی <تصح> نماشی، توران، کجا هر من تورها ترک نبودن در حال تو شاهنامه خیال میکنن که ترکه ولی اینکه در دوره اینکه فردوسی زندگی میکرد یت قبیله آریایی آمده بودن همینه و ترکا جانشینشون شده بودن ولی تورها روز قبیله آریایی بودن منتهی سخت تمدنشون پاینده از صد تمدن دون ایرانیا و اینا بوده و همین حالی دل میوعدن میزدن وقرات در همون جای مرزهای خراسان بودن دیگه آره. خب همه نارسیده بوتان تراز نارسیده یعنی نزدیک به بالغ شدن هم خیلی جدن اصلا پلوغ رسیدن برانی رسیده یعنی رسیده همه نارسیده بوتان تراز که رشتشان ایزد از شرمونات میگه خدا اینا رو از شرم و ناز خواسته. سرشتن معنی خاطی کردن مثلا خمیر رو میگن سرشتن یا گل رو سرشتن. آب و خاک قاطی میکنن بعد بعد هم بزنن اون،, اون کاری که گل میسازن میگن سرشتن. دوست دیدم که ملائکه در میخوانه زدن گل آدم به سرشتن دو به پیمانه زدن. شرمنی هیتون حیاء ها داده آره دیگه جزه صفات خوبه زن دیگه زن دریده پی حیاء <تصفيق> رسول اکرم فرمود از سه چیز رسول اکرم فرمود از سه چیز حضر کنی سگ گیرنده دیوار شکسته زن سلیته <تصفيق> زن سلیته زنی که تسلط سعی میکنه به ایداره الان که خیلی زن سریده خوب هستن والا نه تعریف هم نداره باید شما مرد باشیم بفرمین خوبه شما با زن باشید که بفرمین زن سریده خوبه آره. زن با خوبه ولی معمولا زنهای سریده کسانی هستن که ادعا خواهد دارن و حرف زیادی می‌زنن و عمل ندارن و الله مرد وقت مثل بره اگر که زن واقعا بتونه ادارش کنه و بهش برسه و چیز بکنه اون اصلا حرفی نداره میاد که زندگی بکنه اما موقعی که همش حرفی باشه و دادوی داد بیداد باشه و سرسیده باشه و ناغعهد کردن باشه و خوهرم نباشه اون بده دیگه تعلیفی نداره با؟ خب، بگذاریم حالا بنده که وقت زن گرفتن هم نیست شما هم خود تو هر کاره میخوام بکنه بگو جان اولا دختر جان پادشاه مثل همه کار دیگه کارش جنبه سیاسی داره یعنی <متحد> اینا در زم چرا شاه گذشته ایران محمد رزوشا پال جب دختر پاتشا مصر رو گرفت این دختر نبود این جنبه سیاسی داره این که میکردم بعد هم زن وقتی می توی خونه شوهر یکی بالاترین کسش و بزرگترین کسش شوهر این توجه داشته باشید تو هم میرید با یه مردی زندگی میکنید چندین سال بعد بچه میارید دو تا سه تا فلان بعد ممکنه که از این مرد دلتنگ میشید یاد داداشتون بیاد مثلا به که ها اون مرکی یا بگی چرا خواره اذیت ازیت میکنی؟ اینم ازیقت با ولی اگه به همون برادر بگید که خیلی خوب من این آقا رو میزیرم کنار تو دو رو ساخت منو نگه دار؟ نمیتونی تو نمیتونی؟ ملازم بنابراین بالاترین کس زن بعد از اینکه شوهر کرد دیگه شوهرشه چون برادرم زن خودشو داره، نه اینکه بگم آدم ولیه اصلا، امودا، ولی اونم گرفتاری خودشو داره، اونم زن خودشو خود نمیتونه که بنابراین تنهاست یعنی مهمترین، آ... بچه ها، یعنی بچه خود آدم دیگه بچه منه، بچه زنانه دیگه غیر از اینکه نیست خب میذاره میره، دختر شوهر میکنه، پسر اونا زن میگیره. پسره میره، صراف زنش دختره میره باز زنگی و مرد باهم. با هم بنابراین باز هم میشه بالاترین آدم اون شوهره برای زن و اون زنه برای شوهر و همین دلیل حتی اگه بچه یه وقتی بایی که مثلا بابام تو رو اذیت میکنه خانوم باید باید خفش رو زهر زیدی نظر. که به تو مردید، تو فرداراتون چیم میرید، من باید باید و این باید کنزیم ما رضا میکنی؟ این است که خب میموندم زندگی میکردم بگیم واحیم پای دلشون میلرسید <تصوح> خب همه نارسیده بوتان تراز که به سرشتشان ایزد از شرمناس کسی که خوشاید از ایشان بگوید بگه اینا دخترای این قشنگی همه از شرم و ناسترشده هر کنون چون میخواید بسم الله نگه کن به بالاودی داره او. سیا چشمندکی چشمندکی برگماشت نگاه کرد به این دخترها یکی از این دخترها چشم از اون برنمیداره سیا وخش چشمندکی برگماشت از ایشان یکی چش از بر برنداشت گماشتن یعنی که گماشتن گماشتن یعنی معمول کردن این نوکر سربازاری که مستدن خونه عبصرها کار کنم من مردن گماشتی چشمش یعنی مشغول کرد برم کار ها ببخشیم از ایشان یکی مذیرت میخوام بازه خنگ شدم من این بود خنک شدم خیلی من ببخش از ایشان یکی چشم یعنی هیچ کدومشون نمیتونستن چشم رو از او آدم دستش که مطالعه نکنه گیم، سر کلاس، این عیبا رو و این ای واسه شما نید روز من هست واسه من هست بی شما استافت کار رو بکنم از ایشان یکی چشم از بر میگه همه‌شون خیره مونده بودن به این پسر همین آن بدین این بدان گفت ماه نیارت بدیم شاه کردن نگاه میگه دخترا به هم دیگه میگفتن که ما هم جرأت نمیگره به این شاه زده نگاه کنیم برای کمال زیباییش بعد از این سودا به مرخصشون کنیم برختند هر یک سوی تخت خویش جکان و شمارنده بر بخت خیش که میتوند درد چیز کنید ده شکره. ده شکره. نه جکیدن به معنی گرگر کردن و اظهار ناره, ناره. خب اینو خیلی راحت تو فرهنگ میتونید پیدا کنید اما چیزی که عقلتون نمیرسه بریم سراغش این است که برشمردن به معنی بد کفتن برشمردن یعنی عیبای کسی رو این که حالا باز جوجه نویسنده ها میخوان مثلا بینیم که فلان چیز شمرد بعد برای که خیلی ادبیش کنن این که مثلا مزایای فلان کار و فلان که در ضمن سخنرانیش برش مرد. تکون خیلی هم بالا جون مهم مهمی گفتن. <تصفيق> <تصفيق> برش مردن من بعد گفتن میگه دخترها رو وقت صدا ما تحت کرد همشون تو دلشون خور میزدن و به بختش به خودشون بد می‌گفتن. شمارنده بر بخت خیش یعنی به باخت خودش، از باخت خودش انتقاد کرد. بر. چونشان برختند، سودا گفت که چندین چه داری سخن در نهایت؟ نگوییم را تا نجادت و چیزی که بر چهره تو فر چهره پریس را نیاز آشکانه داره میتونه و سری. یکی وقتی اون رفتن سیابه گفت که چرا چرا حرف آشکار نمی که کسی را انتخاب نکرد از اون بچه ها اونا اومدن همه نگاه کردند یکیشون چشم از سیابهش بر نداشت مدتی پس سیابهش چیزی نکرد سیابه هم دختران ما قصد. بعد میگه چرا چیزی نمی نمیگی که نژاد تو از کجاست که مثل چهره تو فرض چهره پری رو داره هران کس که از دور می را شود ای هش رو تو را روشن دیگه از این خوق رویان به چشم خرد نگه کن که با تو کم در خورد اندر خوردن یعنی در خور کسی بودن یعنی سزاوار شایسته بودن میگه به چشم خرد نگاه کن ببین کنون یکیش شایسته‌ی توست به درد تو می‌کوره، همون رو انتخاب خوابا از این خوب به چشم خرد، می کن که با تو کندت کرد حالا نظر سیاوشو اون دلش میگذشته فردوسی میگه ولی اول میگه که سیاوش خروه ماند و پاسخ نداد چیزی نکه، چون این آمدش بر دل پاک یاد یعنی این یه تو دلش بود این نگفت که گر بر دل پاک شیون کنم به آقایت که از دشمنان زن کنم این سودابه دختر شاه هاماوران بود شاه هاماوران قصه که گفتن اینجا اشاره دیم بعدا الانم نیدونه که چیکار کارداری میکنم کی نگفت کاملا حواظ جنه خلیه این است که میگه که اگر من بر دلم دل من بمیره و من شیبن بکنم بر سر زنم بهتر از این هم سیاد این کردن رو به هم معنی گرفتن به کار میگرن دیگه برای زن هنوز میگن شوهر کرد درسته؟ میگن زن شوهر کرد اون دفتر شوهر کرد برای مرد نمیگم زن کرد دلیلش این که کردن یه معنی دیگه هم داره اینه که به نظرشون اماده میگه زن گره ولی قدیم نمیگفتم گفتم زن کردم این شوار کرد. سعدی میگه مردی بیاز ایمان گه زن کن دختر منشان به خانه و کن زن کن این زن میگه. که گر بر دل پاک چیونگ کنم، به هایت که از دشمنان زن کنم زن کردن، در ما صحبت کردم. کردن زن بکنم، یعنی یه دختری رو زن خودم بسازم معنیش اینه اون دختر آزاده، ولی بعد می تو اون قرارداد گذاشته میشه و اینا، این دختر دیگه میاد در اختیار اون مرد دیگه همزوشون اون هم میاد داره، یعنی یه وظیف متقابه یعنی این دختر آزادی که دختر آهای پرانکست بوده و خانم پرانکست بوده از حالا تبدیل میشه به زن پرانا این میگن زن زن کردن زن ساختن زن ساختنی که دختر بگفت از دل پاکگر بر دل پاک شیون کنم به هایت که از دشمنم زن کنم شنی دستم از نام بر مهتران همه داستان های ها ما بران که پیش با شاه ایران چه کرد؟ شاه هامووران حبس کرد، کابوس و مدتی حبس میدوند سه گردان ایران براورد گرد یعنی پدرشون داره بود پر از بند، سودابه، گرد، دخت اوست بند و قبلا، یادتون هست؟ یه بیتی، یه اولی که خود سوداوه پیغام بده بود که چرا حرم نمی آید و فرستاده ای فرستاده بود که یواشکی بهش بگی که تشگیرین حرم بدون گفت مرد شبستان نیم یادتون هست به بدون گفت مرد شبستان نیم مجویم که با بند و دستان نیم یادتون هست؟ بند یعنی مکتو کور بند، سوداغه، گرد دخته اوست نخواهد همین دوده را آب مغزو پوست اگر دختر شاهر و ماورانه از این خانواده نمغزشون میخواهد نپوستشون یعنی دشمنه باشون اما دوده دوده از همون دود میاد دوده با حی نسبه دوده یعنی اوجا و هر خانواده زردوشتی اولا باید همیشه آتش روشن داشته باشه البته این یه ضرورتی هم بوده چون فندک رو کردوی تا الان سراغ گاز بکنی زوری میکنی روشن میشه نیجور که نبوده که آتش روشن کردن پار حضرت فیل بنابراین بهتر این که آتش روشن داشته باشن خونه هر وقت می‌کن اینو زیادش کنن علاوه کنن بسید به علاوه جمعی ملتبی هم داشته گذشته از این یه خانواده وقتی می‌شد یه نفر اگه هست یه زن باشه یا یه مرد باشه می‌تونه بره یه رفتران یه جایی یه تنو می‌گیره با خوره ولی دو نفر که شدن یا بیشتر شدن بعدی یکی بار بذارنم چیزی بپزن این است که قانون و اجاق و دوده به معنی فامیل و خانواده میارن هم میگه کانون خانواده قانون یعنی اجاق زنی هم که بچه نمیاره میگه اجاق من کوره سنی دید که میگه اجاقش کوره. معنیش این است که من اگه مردم این آتیش خونی ما رو دیگه هیچ کس روشن نمیکنه دو کنی کوره اجاقش دوتا منی خانواده همیم دو میگه میگه خانواده نخواه هت دو برا مخصوصی که دختر اونه دیگه بله شیوه یعنی مرگ نه شیوه منی تایل منی روش من گاهی گاهی روشهای بعد چالاک زدن اینا رو. تلپاک شیوان کنم شیوان درست شیوان من می‌خوام. شیوان یعنی آغفغان. یی اوجاری. خلاص باند سودا و گر دختر اوس نخواهد نخواهد همین دوده را مزوفوست. سیاقش به پاسو نکشافت لب چهره برداشت از روح قصب قصب پارچه کتانی و در بعضی نقاط کتانهای خیلی خیلی زیبا و گرانباها می ساختن که جز پارچه‌های های شهانه بودن شد یکیش قصابه مصری معروف خیلی رام بود دیگه وقتی که سودا به چیز کرد اینکه نخوندی تو که بخون یه چهار پنج بیت دیگه دکتر جان به رو گفت خوشی بالماهینو ماهنو دونت گریدونن... یاری دون که یاری دون که میند برگاهنو گاهونو رباشت شیفت از غلط ما تو خوشی داری خود بسی من گیم بر سخت آج زیاغون رو پیمیزه نباشد شگه در به مهنگرد به مهنگرد پسی را به خوبی بکنم بسیار من همینقدر دست داشت رفت کنم که اینجا حرف آخرش رو سوزاوه داریم میسن خب که تا از این جبانهای تیرونی رفت بودم رشت شنیدو هم که رشد زنهای اون کاره داره و هستن و فلان و اینا و رفتن که و اون یه الباتی هم با فنگیلت جوان میکنن با روشون که نمیشود اون جایی که گفته بودن که هستن اینا و واسطه هست کسانی ثانی هستن که دلالت میکنن و میبرن و میکنن این جوان ها آمدن و اونجا قدم میزدن و دیدن که بله یک دوتا دوتا مرد هستن که ظاهرا اونجا هستن مثل بیکاره و به ریاخهشون میاد که همون اون کاره باشن یعنی دلیل باشن واسطه باشن اونتا روشون نمیشد باز برند بگن که آقا خانوم داری بگرمت یکمت که نباشه بزنه میگوشتون بعد یه چون یکیون که یکیون روی زیاد جلو میگه که آقا ببخشین واقع معتشم کجاست؟ واقع معتشم با آقای محروف رشت رشتی هم میگه آقا این واقع معتشم است حرف آخر تو رو <تصفيق> میگه که سوداوه وقتی, وقتی که حرف نزد چیزم سوداوه قصده به مصری روش برداشت و گفت چی؟ گفتش که است که وقتی خورشید باشه کسی به ماه نگاه نمی وقتی من هستم به این زیبایی و به این و بو و اینا خب مسلمه که اون دخترها به چشکه نمید چاووش به پاسوف چنانک شد لا پری چهره برداشت از روح قسم به دو گفت خورشید با ماه نو گر این دون که بینند برگاه نو نباشد شگفت در شود ماه خار میگه خورشید با هلال وقتی بیان تعجب نداره که هلال اصلا ارزش بشه نباشد شگفت در شود ماه خار تو خورشید داری خودن در کنار بله کسی کن چومن بر تحت آج زیاقوت و تیوزه بر تاج تاک نباشد شگفتر به مهنن گرد کسی را به خوبی به گذنش مرد مقصود از حرف آخری زرد پیلو استاد حضرت فیل کی بوده که بینیم؟ حضرت فیل کی بوده که امی یکی از حضرت های مهم بودی تیکی؟ فیل چون دوراوستنین و بزرگ هیوون روی خشکیه اینه که بگن کار فیله ولی ولی اینکه خیلی کار والا گفتم 8 دولارو نیمیدید شما افتار میگیدید نه اونو چیز بله اون چون اسمش زشت دیگه بگن پشکل ما دولار بله چی منه کارش کشم ها gutudo ما hocado спортliv Principal عرب کسی ب flats قارب و ا��ه باید دسته دهارم که ب genau간 محبه دسته درمو��.ممونوڈرمد دستهیمد همونًا بایدیممهه اهمیا شن Permain Fu seen by Huawei Paulo م Takesha sas as ofation�ors for a short worth.م Macht creab Cristo спасибо Yes